گاتاها مانتراوی تأمل برانگیز من از دیروزم و از امروز در من اما چیزی هست از فردا و از پس فردا و از جاودانگی تمام روزهای در راه چنین می گفت زرتوشت. بحث در مورد یکی از کوهندترین آثار مکتوب نیاکان ما گاتاها یا گاتاست 17 سروده منصوب به زرتشت که در برگیرنده پیام و آموزش های اوست و برخلاف دیگر زمیمه های با خرافه آلوده نشده است شروه های گاتاها مانترا توصیف شده مانترا یعنی قابل تعمل و اندیشه برانگیز از اوستا تنها چیزی که به زرتشت و دین زرتشتی تعلق دارد همان گاتا هاست گرچه نیاکان ما هفده سرود گاتایی را در میان مجموعه ای از نوشتارهای گوناگون که بعدها نام اوستا به خود گرفت جای داده اما کتاب اصلی آئین زرتشت گاتا هاست نه اوستا که یک جنگ و کشکولی است از مسائل مختلف و همونطور که گفتم در آن خرافه کم نیست اوستا نه کتاب آسمانی است و نه اون را زرتشت نوشته است به وسیله کسانی تدوین شده که هیچ کس آنها را نمیشناسد و نامشون هم مشخص نیست گاتاها منظوم و موزون و کوتاه است و به لحاظ صرف و نحف و زبان و بیان با دیگر های اوستا تفاوت دارد شماره بندهای دو بیتیگونه اون متن اصلی نه اون چه به اون افسوده شده دویست و سی و هش بنده است و پنج بخش دارد ببخشید اگر نمیتوانم واجه های پهلوی را درست تلفظ کنم اهنود گاتها اشتود گاتها شپن تمد گاتا وحوخشتر گاتا و اشتواشت گاتا اساس آموزش گاتا بر وجود آفریننده است که او را احور مزدا می خاند. خدای جان و خرد که فردوسی هم در شاهنامه به اون اشاره دارد به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد از جمله مفاهیم برجسته و بنیادین گاتاها این است هرگاه انسان به راستی رویاورد جلوی عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد جهان مادی و اقلانی در هم تنیده هستند انسان در این دو جهان به طور همزمان زندگی و پویایی دارد تنها پیشکشی که نیاز است اندیشه نیک است باورهای خرافی به خدایان الهه ها و موجودات تخیلی و اجرای مراسم برای خوشنود ساختن آنها بایستی کنار گذاشته شود و همه تصورات و اعمال غیر منطقی باید رها شوند. هدف از زندگی شاد و خوشبخت زیستن است اما خوشبختی از آن کسی است که به دیگران خوشبختی رساند. سخنها را بشنوید و با اندیشه روشن در بنگرید و راهی را که باید در پیشگیرید برای خود برگزینید. از آن دومینوی همزادی که در آغاز آفرینش در اندیشه و انگار پدیدار شدند یکی نیکی را می نماید و دیگری بدی را و میان این دو دانا راستی را برمیگزیند و نادان دروغ را به بشر آزادی اندیشه گفتار و کردار بخشیده شده و ذهنی روشن برای تشخیص میان اونچه نیکو بد برای جامعه انسانی دارد. اهورمزدا دارنده خرد دوست انسان است. اهورمزدا دوست انسان است. انسان نیز در خردمندی نشانی از خدا دارد و هرقدر بر دانش خود بیافزاید به او نزدیکتر خواهد شد. در صده هیجده میلادی پژوهشگر فرانسوی آنکتیل دوپرون با بهرهگیری از زبان سانسکریت که ریگ ودا اشعار و سروده مذهبی هندو با اون نوشته شده کلید زبان اوستا و سرانجام گاتاها را پیدا نمود ریگ ودا از نظر زبانشناسی و محتوایی، اونچنان که گفتند پیوند نزدیکی با اوستا دارد زمانشناس آلمانی کارل فیردریش گردنر او هم به بازشناسی گاتاها کمک کرده است من به گاتاها آشنایی بسیار ناچیزی داشتم نوشته ها و گفته های فرهنگ ورزانی چون دکتر آبتین ساسانفر و دکتر محمود کویر نگاه و دیدگاه مرا نسبت به اوستای کوهن و در واقع گاتاها وسعت بخشید جدا از دکتر آبتین ساسانفر افرادی که نام میبرم برای برگردان فارسی گاتاها تلاش کردند ابراهیم پور موسا جوان پدر دکتر علی جوان کاشف لیزر گازی حاشم رزی موبد فیروز آزرگشپ عباس شوشتری الیکبر جعفری حسین وحیدی جلیل دوستخواه خسرو خزائی موبیت رستم شهزادی بابک سالحیان به همراه رضا مرادی قیاس‌آبادی و دیگرانی که من اسامی اونها را نمیدانم در مقاله مربوط به همین بحث در سایت خودم لینک ترجمه دکتر آبتین ساسانفر را گذاشتم اضافه کنم که گاتاها جمع گات به معنی سرود است رد پای این واژه در دستگاه های موسیقی امروز ایرانی همانند سگاه و چهارگاه و راست پنجگاه به جای مانده است گفته می شود در گاتاها نام زرتوشت بیشتر با باسیقی سوم شخص آمده است البته ذکر نام اون آور خرد هم سرتوشت لزوماً دلیل بر انتصاب گاتاها به وی نیست برخی معتقدن که گاتاها صرفا متنی کوهن است و زرتشت خالق و نویسنده اون نیست و چه بسا سرایش اون کاری گروه بوده که برای اجرا در مناسک مذهبی سرودند گرچه بیش از سه هزار سال است که نام زرتوشت به عنوان یک نام مقدس وارد زمیر ناخودآگاه ایرانیان و مردمان آسیای میانش شده و پژوهشگران اروپایی هم از او به عنوان نماد دانش یاد می کنند اما زمان زندگی زرتوشت همچنین تاریخ و قدمت گاتاها به طور دقیق مشخص نیست برای من مشخص نیست گاتاها بر یکتاپرستی و اندیشه نیک گفتار نیک و کردار نیک استوار گشته است در آثار کنفسیوس هم عبارتی مشابه وجود دارد به آنچه که برخلاف آداب و مرسوم برازندگی است نگاه نکن به اونچه که برخلاف آداب مرسوم بروزندگی است گوش نکن و اونچه را که برخلاف آداب مرسوم برازندگیست نکن نگو این اندرز اخلاقی همراه یک افسانه بودایی به ژاپن هم رسیده که تندیس سمیمون خردمند گواه آن است سه میمون خردمند در ژاپن به میمونهای سمبولیک اشاره دارد که با کمک هنرهای تجسمی بیانگر این هستند که بدی رو نبین بدی رو نشنو و بدی رو نگو بر زبان نیاور شر نبین شر نشنو و شر نگو همون که زرتشت اون پیام‌آور خرد و حکمت گفت گفتار نیک پندار نیک و کردار نیک از نارسایی این بحث پوزش میخواهم و از اینکه وقت گذاشتین و گوش کردین تشکر می‌کنم. هدف من از شرح و بیان ها همچنین یادگار زریران یا نامه تنسر اشاره به میراث مکتوب نیاکان ماست